بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و اهل و صحبیتهمین اما بعد ما همچنان در بحث فطرت هستیم ما گفتیم در بحث فطرت ما در بحث لغوییش گفتیم که فطرت از کجا برگرفته شده از بحث خلقت و نمیدونن فنان فنان پنج تا تعریف گفتیم در بحث فطرت که یکی از ضوابط کانها و روش ها یا یکی از هست برای شناسه خداوندی یک تا، یعنی خداوند یک تا هست. هنوز بحث روبیات نیست، هنوز بحث اولویات نیست، هنوز بحثت نیست. بحث اتموزفات نیست. بس، یک راهکاره، یک وسیله هست برای شناخت آیا یک وسیله هست یا نیست که خداوند در ذرات انسان گذاشته یا نه؟ این بحث چیه؟ بحث ما در بحث فطرت یک جاسکای یک وسیله میشه باش... می یک باشد یا نه؟ خب، ما اولا ما بحث این گذاشتیم که فترت در لغت چیه؟ بل رفیم بحث اه... فطرت آیا در قرآن و سنت اومده به چه معانی اومده و چه جاهایی اومده آیا در سنت ثابت هست نیست چند جا در قرآن اومده عدله رو لرزه کردیم. بعد علت اختلاف در فترات هم ما گفتیم گفتیم که علت, فتر... علت اختلاف در فطرت این است که قدریه اومدن به فطرت احتجاج کردم برای اینکه گناهانی که از انسان صادر می شود گناهانی که از انسان صادر می شود زیر خدا و قدر الهی واقعی نیست. Allah مزمل و خاص خودش داشت. تحلیلات داشتیم. و سرقهی خودش بازم این مباحث تکرار خواهد شد لکن الان بحث امروز ما معنا و مفهوم اصطلاحی فطرت فطرت در اصطلاح به چه معنایی هست ما 5 تا تعریف بر کلمه فطرت داریم در اصطلاح اینها همه تعریفات اصطلاحی فطرت هستند بعضی ما گفتن اون که امروز فقط بررسیش خواهیم کرد این فترت خلق خلقت مجابلت و, و تبر انسانه اون چیزی که خدا باید در تبر انسان گذاشته که انسان میتونه حالا با اون خوبی را از بدی تشخیص بده بعدا مسائلی که دیر مجموعی مسئله خواهد اومد دومین تعریفی گفتن فترت همون بداعه حالا معنی بداعه منظورش را چی هست گفت و گفته شده فترت به معنای شناختی است که انسان با اون میتونه کفر را از ایمان تشخیص بده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 معنى الفطرة الواردة في الحديث أن المولود يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين معنى فطرتك در حديث ما كل ما من مولود إلا يولد على الفطرة معنى شئينك مولود لديك طبيعي خلق مشه كآماده بذيرائي الدين هات فلو ترك عليها لاستمر ملازما لها ولم يفارقها إلى غيرها كأجا فهم كنان رحان برآن دین ادامه میدهد و گمراه نمیشه یعنی و, او را و اون دین را ترک نمی کنه که این قرار گفتن امام ابن عبدالبره که مفصلا اومده این مسئله را در تمهید شرحش داده و امام صدقی و خطابی و ابن العربی و قرطبی و نوبی و بیضاوی و دیگران خیلی ها خصوصا از بحث متضده که کتاب مثل امام زمخشری و دیگران که از منتظره و مفکرین و اقلانی ها هستن که متبندی مذهب قدری هست متکلمین خود خود خاص, خاص و ناخاصه در این مشکل افتادن چون خودشون متهم میشن با فترت در نتیجه اومدن فترت رو از معنی اصلیش خارج بکنن خلاصه حرفای تمام تمامی این علمایی که متبندی این شدن که فترت به معنی طبع خلاصه ی حرفشون ما میتون فطرت خلقتی است که انسان را از حیوانات جدا می کند. خلقتی آگاه، انسانی آگاه، و یا انسانی بینا، انسانی که یک عقل وید بینیشی دارد. انسان بینش که انسان را از حیوانات جدا بکنه این اولین مسئله ای که در تمامی گفته های این علماء آمده. دومان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 شخصی شخصی هست با تبع انسانی که با حیوانات فرق میکنه یکم عقل داره که این عقل و این فطرتش چنینه که کفر را از ایمان نمیتونه درشوی سپیده خالی از اینها هست و سومین بحثشون در بحث فطرت بعانی فطرت اینه که, که فطرت انسان آمادگی پذیرش دینه همونطور که در گفته امام من رو اومد ان المولود يولد على على نوع من الجبله والطبع المتهيئ لقبول الدين المتهيئ یعنی اماده شده متهيئ هيات هيات شيئا او هيات فلان او هيات كذا يعني انجهز اماده ساختم متهيئ يعني آماده برای پذیرش دین خب این آمادگی چرا و آمادگی نظر برای پذیرش دین آیا میتونه تشخیص بده خوبی را از بدی یا نه آیا یه چیزهایی که معارفی در ذهن خودش داره یا نه آلا اینا بر رسی قایم کرد این یه خلاصی حرفشون بود آلا به چی استلال کردن برای این گفته شد پس اینها گفته ای اول گفته خیلی از علماء بر اینی که فطرت در معنی استلاحیش بر در معنی لغویش و همان تبعه است و اساس خلقت انسان که خالی از ایمان و گفته درسته؟ که آماده پذیرش. دین هست این خلاصه گفته های تمامی علما در تمام... نکه تمامی در این گفته اول کسانی گفتن خلقت و جبلت و طبع انسانه تفرد معنی خلقت و جبلت و انسان است. استدلال اولشون چینینه به این آیه استدلال کردن گفتن الحمدلله فاطر السماوات والعرض آیه فاطر س... آیه یک سوره فاطر الحمدلله فاطر السماوات به اتفاق علمای لغت فاطر در اینجا به چه معناست؟ به معنای خالق همونطور که ما قبلا ذکرش کردیم گفتن که اینجا کون فطرت در خود قرآن به معنای خلقت اومده پس فترتم در حدیث ما من مولودا یلا یلا کتره فتره اینجا به معنای اساس خلقت انسانه همون انسانی که چی خلق شده اون تبعش اون اساس خلقتش اینم هم همون خلقت خداوندیه که در انسان گذاشته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 ما نمیتونیم طبق اساس مفهوم لغویش بیان بگیم نماز دعا خوندنه و نرکوی انجام بدید و نفجودی پس اولا گفتتون که این که بر این حدیث را بر اساس لغت تفسیر بکنیم پس این اساس قایتون اشتباه بوده دو اگر قراره اگر قراره که ما این آیه را یا این حدیث را ما من مورد لا بود را و آیاتی که فَأَتْبَعَ وَجْهَكَ الَّذِي حَنِيفَةً فَتَبَوَّأَ اللَّهُ الَّتِي فَقَرَ النَّاسَ عليها. اگر ما قراره که این پترت که در آیه و حدیث اومده به معنای لغوی تفسیرش بکنیم خب چه فرقی هست بین علاخوبی و بدی در اون شخصی که اینجوری تبی داره یعنی الان بالفرد اگر ما اگر ما به ما بگیریم بحث پترت به معنای خلقت این آیه را مثلا تحلیلش بکنیم فاقم وجه لدین حنیفه الله التي فتر الناس عليها فاقم وجه لدین حنیفه دینت رو اساس دین حنیفی قرار بده درست دین ابراهیمی که حنیفه مائل از این دین مائل الله در خلق مدح و ستایش فعل خاصی درست چه فعلی؟ دوری وحدانیت که خداوند پس یک نوع ستایش این اشخاصه اگر ما بگیریم فطرت به بحنای خلقت آیا فرق بین کافر و مؤمن ابراهیم و علیه السلام و دیگر پیامبران میکنه یا نمیکنه فرقی میشه اگر ما این معنا بکنیم هیچ فرقی نمیشه فرقی بین ابراهیم علیه السلام که این چیدین وصف دیانتش هست دین ابراهیمی که حریف است. خداوند مدح ستایش این جنین باشه این محمد و این امت محمد جنین باشه فترت خداوند فترت الله الذي فطر الناس عريا پس بحث بحث ستایش مدح پس اگر مدح باشه غیر ممکنه که این فترت به معنای خلقت باشه درست یا نه؟ پس این دو تا در در اینکه گفتن فترت به معنای بالقویش غیر ممکنه به معنای بالقویش بیاد من استدلال دومشون چینینه بين آية سجاء كلام والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا آية النحل أفضاد حش والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شئا خدابان شمارا الله شمارا از شكمان مادرتون أدراحه مادرتون خلقات كذت و چيزي نمیدانستیت گفتم كه غير ممكن كه عقل انسان بفذيره كه فرزندی که به دنیا بیاید بتونه تشخیص بده که این کفر هست و این ایمان در این آیوالله اخراج کن من بدون امهاتی کن خداون شما و از شکمهای از رحیم مادرتون بیرون آورد. در حالی که شما چیزی نمی درسته؟ لا تعلمونه چه میگن انسانی که به دنیا میاد غیر ممکنه که بین کفر و ایمان تشخیص بده خب چون انسانی که به دنیا می آید هیچ چیزی از دنیا نمی داند پس غیر ممکن است که کفر را از ایمان تشخیص بده جواب ما، پاسخ ما چه جواب را اینها بدیم؟ اینها میگن اساس خلقت انسان چی اینه انسانی که به دنیا می آید خلقش جبلهش اینه به دنیا می آید نمی دانه کفر نمی دانه؟ علمی نداره جواب ما اولا این آیه دلیل بر این می دهد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 چنین میخواد بگوید والله اخرجتكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا میخواد چنین بگوید که ما شما را خلقت کردیم و شما این ها را نمیدونستید ما اومدیم یادتون دادیم بر اساس آن چیزی که در فطرت شما گذاشتیم پس اولا این آیه دلیل بر اینه که فرزندی که به دنیا میآید یک قدرت و یک ارادتی خداوند در او گذاشته که میتواند با آن اسلام را تشخیص بده دوباره کسی که چیزی نمی داند. کسی که چیزی نمی‌داند غیر ممکن است کفر را از ایمان تشخیص بده این چیزیه گفتن اونها کسی که چیزی نمیداند، فردی که به دنیا میآید. غیر ممکن است کفر از ایمان تشخیص بده چون چیزی نمی‌دونه ما میگیم گفتتون صحیح در چه موقع یا در چه جاهایی گفتتون صحیح هست در جایی که اون علم اکتسابی باشه اون علم اکتسابی باشه مثلا بالفعز فرزندی که به دنیا آید می تواند بداند قرآن چی هست سنت هست حدیث صحیح و ضعیف چی هست اینها چنو علمائی هستن؟ علم طلابات قرآن علم قرآن علم تجبیج علم نمیدنم احکام تهارت و نماز و حدیث و فلان و فلان چه علمائی هستن؟ علم اکتسابی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 این درک و شعوری که در ما هست اکتسابی هست یا اینکه خداوند در نفس انسان گذاشته؟ چیزی واسه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن اکتسابی هست یا در نهادینه انسان هست؟ در نهاد انسان. در نهاد انسان هست. به خاطر همین میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گناه اون چیزی هست که طبعا تو میدونی که بده و دوست داری مردم تو رو بگیرن یعنی میرسه ما اشخاص مؤمن رو بگیم نگیم به خاطر مشروب حرامه. نگیم به آیا روش میشه یک شخص ممن بیاد مشروب در جمع بخوره؟ نمیتونه زشته، یعنی زشت می داره. پس فرق اوللا بین علم اقتصابی و علم معرفی که در سوممی بند این مسئله ما میتونیم این دوتا از هم جدا بکنیم در سومی قدرب اینه که بین علم حالا اونجا که بحث علم اقتصابی بود و علمی که خدا خودمان در نفس انسان گذاشته. سوم اینکه بین علم،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 ولی که ضد معرفت این یعنی انسان یه چیزی با طبع شجور در نمیاد فرد مثلا بهتون می تیزی خوشتون نمیاد درست درست درق شما شعوره شما این چیز را نمی این بهش میگن درک درق و شعور و معرفت لازم نیست که دتبته به اون چیز علم داشته باشه که این تیزی هست و در نتیجه نمی دارم زبانتون و فران و فران می سیدونه بر می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 بلکه ما منظور ما این است که فترت انسان لازمه این هست که اسلام را بتونه بپذیره نه که شخص کاملا مسلمان هست و میتواند نماز بخواند. نه ما وقتی که میگیم الان میاد چرا ما میگیم فترت اسلامه ما معنی این که انسان فترتن مسلمان هست معنی این حرفمون نیست که همه چیز از اسلام رو میدونه. ما ما اینه که انسانی که به دنیا می اساسش اینه که مشرک نیست خداشناس هست در ذات خودش شناال خداشناس است این اساس کلامو میگم اینجا شرح و بدیم و به این نتیجه برسی و فهم رسیم من و آخری رد بر اینها در استدلالشون به این آیه در نفی علم اینجا که این علم اتسابی هست این است که کفار و مشرکین خداوند هم بازم در قرآن ازشون این چنین علمی را نفی کرده و گفته مثلا مشرکین علم ندارم زیاد در قرآن مثل این آیه اولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، اولو لو كان آباءهم فدارانشون بحث مشركين كإيمان نميرا، كم يقول فلان كذي، وإذا طئناهم التبع ما أنزل قالوا بأن التبع ما ألفين عليه، أبا خب أنا ما قير روانة فداران ما نهسي. خب إني هاي يقول ما قير پدرانمان هستين ما نهسي، خذوا لنا اولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا، يعني أيه غيرز إني كفدارانشون، شيء زي نفيديو به هدایت نمیشود. چیزی نمی نفی این علم چنو علمی هست اینجا مشرکین اینجا مشرکین و با اون اطفال مشترکه چنو علمی نفی شده در اینجا علم اقتصابی شرعی شد اونها حرفه ها داشتن اونها نفیلنم نجاری می کردن و فلان می کردن و فلان می کردن درسته پس اگر قرار باشه پس اگر قرار باشه نفی این علمی که والله اخرجه من بطون امت ممهاتکم لا تعلمونه شیعا اگر نفی این علم نفی علم فتری بود پس اینجا مشریکین هم همینطور مثل اونها هست نفی این علم علم اصلا کاملا فتری هست و در نتیجه اون اونها اصلا مواخذه نمیشن و هیچ وقت قدابن این چنین سرزنش نمیکرد چون این آیات در چه بجیه اومده؟ در درباش سردنش مشرکین پس اگر قرار بود نفی این علم که شما میگید نفی علم مطلقاً نفی علم فطری هست فرقم نمیدید بین علم فطری و علم شرعی پس لازمش این هست که چی مشرکین هم با اون بچه ها با اون که از دنیا میان یکسان باشن و در نتیجه خداون نباید اینجوری بنامازشون میداد حالا فکر کنم نمیذارم 10 دفعه درازید و جوری نگاه میکنید یعنی که این مدت زمانی که الو سيدنا انتم قاعدين كذا هذه هذه ما عدللا را گفتیم از کرآن و سنت برای این که فترت هست. و گفتیم مستقیم و غیر مستقیم در کرآن بهش اشاره شده و گفتیم که فترت همون میساقی هست خداوند گفته و این گفته اهل سنت و ایله خدا را بکن من عالم نبودم و آتش هم علام مصیم الله سو بر رابطه این هست خداوند گرفته و احداث را گفتیم ما اعتقاد خدا برای ندرجه بین این, این احداث و این آیات که چی قبل نادلله شد که فطرت اسلامه. لیکن باز شبهاتی که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 که کاملا مفصل امام عبدالورد در بحث در کتاب تمهیدش آورده. پس گفتیم آیه ای اولی که بهش استدلال میکنن فرموده خداوند الحمدلله الذی الحمد فضل و السماوات که ردشون داریم گفتیم اینا فطرت معنوی لغوی بر اساس این آیه تفسیرش کردن گفتیم درست نیست کلمات شرعی باید مفاهیم شرعی داشته باشن یعنی بر اساس احادیث و ادله دیگر توضیح داده بیشم بحث نماز و ایمانی که قبلا داشتیم. دوباره من گفتیم که اگر قرار باشه که فترت به معنی لغه بگیریم پس در آیات قرآن فترت ممدوش نیست. فترت یک چیز نیکی نیست. چون ما در قرآن اینچنین میدونیم و اینچنین میبینیم که خداوند به نیکی از فترت یاد میکند با مد و خوبی. فرق موجه کل دین حنیف و فترت الله التي فتران نخیر. این رد شبهی اینکه انسانی که به دنیا میاد والله اخراجکم من مدن امهاتکم لا تعلمون شيئا گفتن که انسانی که به دنیا میاد چیزی نمیدونه در نتیجه غیر ممکنه کسی که چیزی نمیدونه مکلف باشه و غیر ممکنه این که که به دنیا میاد علمی نداره تشخیص بده خوبی را از بدی ما ردشون دادیم مهمترین رد ما اینه که ما باید بین علم و شناخت فرق بذاریم اینجا نفی علم نه نفی شناختی که اساس اساس بحث من هست در فتره است شناخت الله یک تا فرسی. این اساس ما بحثش میکنیم این فرق بین این مسئله هست و بین بین اون چیزی که شما دارید میگید علم اکتسابی در اینجا علمی نفع شده که اون علم اکتسابی هست همونطور که ما گفتیم خداوند این اینچینین علم را از مشرکین نفع میکنه اولو کان اعباهم لای علمون شیعا که آیه صد سوره مایده هست آیه ص که غیر از اینه که پدرانشو چیزی نمیدونستن پس نفی این علم نفی علم است. یعنی فرزندی که به دنیا میاد دنبال دین اسلامیات درفتن نمازیست و چیزی از نماز روزه نمیدونه لیکن آیا دلیل بر این هست که ست الله ندارد چطور هست که اون مثلا فرزندی که به دنیا میاد شیرخار دنبال سینه مادرش میگرده و شیر میخوره یعنی این چیزی فطرتی در ذات اگر شما میگید خودی را از تشخیص نمیده و هیچ تشخیصی نداره هیچ علمی نداره پس چطوره که وقتی که دستتون میذاری جلو لب دوزادی که تازه چکر مادرش در اومده چطور پس اون فرزند دهانش را میده و میمکه یعنی جالبی قدرت خداوند در اینه که فرزند به اون ای که خداوند بهش داده قشنگ مثلا زبانش و زیر سینه مادر میگذاره که قشنگ شیر را خب چه قدرتی چی چه چیز تشخیص بهش داده؟ یک تشخیصی داره یا نداره ما بحث ما در اینه شما میگید در تشخیص داره خالی هست اگر خالی از تشخیص هست پس چطور ادرار میکنه پس چطور مذیق میکنه اجزاده نمیدونم چی رو هست همون موقعی که به دنیا میاد چطور میت میتوده تشخیص بده خابو از بیدادی تشخیص بده خیلی چیزها هست پس اساس هست، تشخیص هست در فرزند اینا میگن نه انسان خالی هست. خالی از تشخیص ما میگیم نه اصلا حرفتون اشتباهه و اینم ادله در رد اینها سبب این استدلالشون به این آیات است انما تجوزون ما کنتم تعلم تعملون انما تجوزون ما كنتم تعملون آیه 7 سوره تحریم بعدش آیه مدثر 38 كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه اینا گفتن میگه کسی که فرصت انجام یک عمل را نداشته باشه غیر ممکنه که مرهون به عملش باشه. بخاطر همین خداوند میگه ما کنم معذبین حتی نبعث رسوله آیه اسرا پونزه آیه پونزه سوره اسرا آیه پونزه سوره اسرا و ما کنم معذبین حتی نبعث رسوله انسانی که فرصت عملی نداشته باشه پیامبری هم بهش نیاد اون شخص غیر ممکنه که مورد محصول قرار میگیره و همچنین این استدلال رو کردن به اجماع بر اینکه قصاص و قصاص گرفتن از یک فرزندی که مثلا برفت جنایتی مرتکب شده باشه قصاص از جه زفت چون چیزی نمیدونه یعنی مثلا فرزندی جنایتی مرتکب بشه مثلا توفنگی بذاره در سینه پدرش پدر رو بکشه. گفتن که این قصاص و قود ازش زفت میشه. الان این استدلال های این ها و خواهیم اومد اعتراضات ما خودمون چرا این چنین استدلال هایی دارن به این آیات و چه این استدلال میکنن؟ به اینکه انسانی که فرصت عمر ندارد غیر ممکنه که مورد محاسبه قرار بگیره این اعتراضات اینها و این شبهات اینها مبنی بر اینه که اینها نتونستن مثل مثل قبلی بین ایمان فطری شناخت فطری و بین اون چیزی که انسانی که اون ایمانی که انسان کسب میکنه با عقل و حواس خودش درک میکنه از فیانبران یاد میگیره نه تونستن بین این دوتا فرق بدن پس علت اصلی انحراف اینها در هست؟ شناخت فطری و شناخت اکتسابی علم معرفت معرف علم اکتسابی است علمی که از طرف خداوند میاد انسان کس میکنه با شنیدن و دیدن شناخت فطری هست. در اساس نفس انسان خداوند گذاشته شناخت گفتیم مثالم هم به اون تفل شیرخوار امام خطابی چنین میدید در استدلال اینها به این آیات لا عبره للايمان الفطری فی احکام الدنیا. در, در اون مساله قصاص می‌گوید لا عبره للايمان الفطری فی احکام الدنیا. ایمان فطری هیچ وقت اعتباری در قصاص و احکام دنیوی ندارد جز احکام اخروی است فرق باید بین احکام دنیا احکام, احکام آخرت میگن اعتراضشون بر ما اینه شما اهل سنت و شما که دای عقیده سلف دارید اگر قرار ایمان انسان فطری باشه پس بچه ای که بچه ای که هشت ساله هفت ساله هست انسان این را کشت پس این بچه باید قصاص گرفته بشه بر اساس قول شما و به اجماع هم قصاص گرفته نمیشه چون چرا علم آگاهی ندارد؟ مکلف نیست؟ درسته؟ ما اعتراضم در اینها اینه که شما قاطی که هدیب قاط زدید اولا قاط بین علم علم اکتسابی و علم فطری اولا بین این دوتا قاط زدید دوبما شما بین احکام دنیا که بر اساس علم اکتسابی هست و بین احکام آخرت دارید قاطی میکنید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 بر اساس تکلیف بر اساس اون علمی که کرده ولی هیچ وقت علم فطری اساس, اساس مثلا بل فرض یک شخصی نمیدونه بل فرض یک شخصی در جایی که بچه هیچ علمی نیست، در یک صحرا و یک جنگلی هست علمی بهش نرسیده آیا امکان داره خداوند او را محاصله بکنه بر اساس علم فطری که بهش داده خیر، این آیاتی که شما استدار کرد رد بر علیه شماست نبه شما آیه دلیل بر اینه و ما كنا معذبن حسنا بعثنا رسولا دلیل بر اینه که اگر علم شرعی نماد علم برحنا نماد ما اون اشخاص که واسطه پیامبران ما اون اشخاص را مؤاخذه نمی کنیم بر اساس گمراهیشون علم فتری داره علم متدری داره اساس نهادینه اسلامی و انسان, انسان, انسان یک انسان مؤمن اون اساس اون شخص مؤمن رو داره لیکن این بدون اون علم کتابی نمیتونه راه نجات را به بده گفته یا من خطابی در معالم سنا دملاش نینه؟ لا عبرت لی ایمان الفطری فی الدنيا دنیا و این ما یعتبر ایمان شریعی المكتسب بالإرادة والفعل المكتسب بالإرادة والفعل. در معالم سنا جلد چهارم سفیدی وی سونا ودونه. و اون چیزی که اعتبار داره علم شرعی هست که با اراده و فعل انسان کسب میشه. بله خلاصه حرف ما دری. در این اعتراض ما بر این استلالشون این است که فرزندانی که به دنیا میآیند بر اساس فطرتا نه اینکه آنها مکلفه بلکه خداوند این فترت را در آنها گذاشته تا اینکه بتونن کفر را از ایمان تشخیص بدن نه اینکه مؤمن هستن شناختی هست یک تا هست در ذات آنها که گذاشته خداوند که بتونن حق را از باطل تشخیص بدن نه اینکه ذاتن انسانی هستن که تمامی احکام شرعی را بدون وحی و بدون پیامبران، بدون قرآن و سنتی بتونن به آن پی ببرن دستیبیش رویده بکنن خب اصلاح آخر خیلی مهمه خیلی تولانی هست ما که امروز این دهان باز نشستیم و دست از قلم گرفید و نشستیم انشالله ادامه بحث به هفته آینده باگذار بکنیم چون بحث خیلی مفصل باز مروری دوباره بکنید بر مطالبی که خوندید تا اینکه یکم یک کم آمادگی بیشتر داشته باشید خصوصا اعتراض بعدی که مفصل است نیاز به شرک رو بیشتر و پیچه ده از این سه تا مسئلهی که ما الان پس سه تا استعدال داشتن بر سه تا استعدالاشون رد داریم. مرور بکنید و فکر بکنید درش چه ردی داریم؟ چی خواستیم بگیم اونها؟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 در بحث فطرت و کسانی که گفتند فطرت خلقت و جبلت انسان و طبعی که انسان داره طبع انسانی که برخلاف تمامی حیوانات است یک طبع یک طبعی که انسان داره بدون تشخیص خالی از هیچ نوع تشخیص مالا ان بحث حدیثی و بحث رد ردودی دیگری که هست ان در هفته آینده سبحان الله تبارک و تعالی و صلی الله علی محمد و علی